افسان به نام خدای یگانه مهربان. سلام. همه ما افسانه ها رو دوست داریم شاید به علت که افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارند. واقعا هیچ چیز بهتر از افسانه ها ما رو با آبا و اجدادمون پیوند نمیده وقتی افسانه ای رو می یا به اون گوش میدیم انگار سال هاست با آدمها، سرزمینها و ماجراهای تلخ و شیرین اون آشنا هستیم. واقعا راز افسانهها ها در چیه؟ هزار افسانه اختصاص به افسانه ای ایرانی داره به نام مشکل گشا برگرفته از کتاب قصه های آمیانه مردم ایران به گردآوری و تحقیق منوچهر سلیمی. امیدوارم که از شنیدن این نفسانی زیبایی رانی لذت ببرید. در زمانهای قدیم مرد کاسبی که همسرش از دنیا رفته بود به امراه تنها دخترش زندگی میکرد اونها زندگی خوب و آرومی داشتند، تا اینکه مرد کاسب تصمیم گرفت با زن دیگه ازدواج کنه و بالاخره هم کارو کرد و به زودی ازدواج کرد جهاز زن یه شطور نر بود مدتی که گذشت زن شروع کرد به آزار و عذیت تنها دختر مرد کاسه اون دختر رو مجبور میکرد که هر روز شطرش رو برای چرا به صحرا ببره و دختر بیچارم چاره جز اطاعت نداشت روزی از روزها وقتی دختر مثل هر روز شطر نر رو برای چرا به صحرا برده بود روی سنگی نشسته بود و به دور خیره مونده بود در این موقع متوجه شد سه زن در دور ها مشغول انجام دادن کاریان. دختر از جا بلند شد و به طرف اونا به راه افتاد. وقتی به نزدیکی اونا رسید دید که سه زن سه سنگ رو نزدیک هم گذاشتن و اجاق درست کردند. اونا دیگی آوردن و روی اون قرار دادن. دختر با کنجکاوی از اونها پرسید شما میخواییم چیکار کنیم؟ یکی از زنها جواب داد ما داریم کاچی درست میکنیم. دختر که حال اسم کاچی رو نشینده بود با ترجم گفت کاچی کاچی دیگه چیه؟ اونا گفتن کاچی از آرد و روغن و شکر درست میشه. البته آب هم توش میریزن. بعد از دختر خواستن که بره و از شطرش برای اونا کمی شیر بیاره تا بخوره. دختر گفت شطر من نره. شیر نداره که من بدوشم. زنها گفتن ما هر کاری گفتیم انجام بده. برو و برای ما شیر بیار. دختر باز هم گفت شطر من نره. چجوری براتون شیر بیارم؟ زنها جواب دادن تو به سراغ شطورت برو اون وقت میبینی که ما راست میگیم و تو کلی شیر داره. دختر با شک و تردید به طرف شطورش رفت و دید که بله. اونا درست گفته بودن. بعد مقداری شیر دوشید و برای زنها بود. دختر به محض رسیدن به زنها از اونو پرسید. شما چیکار کردین؟ نکنه جادوگرین؟ زنها خندیدن و گفتن <تصفح> <تصفيق> نه ما جادوگر نیستیم این از معجزه کاچیه از این به بعد هر وقت مشکلی یا گرفتاری داشتی میتونی نیت کنی کاچی <تصفح> درست کنی اون وقت مشکلت حل میشه دختر با خوشحالی از اونها خداحافظی کرد و همراهش شطرش به طرف خونه برای افتاد دختر وقتی به خونه رسید تمام ماجرا رو برای پدر و زن پدرش تعریف کرد زن پدرش گفت دیگه دروغی از عظیم بزرگتر نداشتی که بگی؟ و پدرش هم اضافه کرد دختر جان شطور ما نره نه ماده که شیر بده ولی دختر قسم آیه خورد که والا بلا من از شطور شیر دوشیدم زن پدرش با عصبانیت گفت اگه بازم بخوای دروغت رو تکرار کنی اون وقت دختر کلام اون رو کرد و گفت اگه،, اگه باورتون نمیشه یه ظرف بدین تا برم و از شطور شیر بدوشم و بیارم زن پدرش که درش میخواست دروغویی دختر رو ثابت کنه فوری ظرف اون داده گفت بیا اینم ظرف ولی وای به حالت اگه این ظرف و خالی برگردونی دختر هم ظرف رو گرفت و رفت سراغ زن پدرش هم دنبال اون راه افتاد و دید که بله دختر داره واقعا شطور نر رو میدوشه و بعد هم با ظرفی پر از شیر نزد اونها برگشت زنپدر وقتی دید دختر دروغ نگفته سکوت کرد و چیزی نگفت ولی با خودش گفت باید سرلی توی این کار باشه اگر نه اگر نه شطور نرک شیر نمیده خلاصه اون شب دختر توی اتاق نشسته بود و داشت با خدای خودش درد دل میکرد و میگفت خداچون میبینی که من دختر یکی یدونه پدرم هستم ولی اون حرفم رو قبول نداره زن بابا که دیگه تکلیفش معلومه ای خدا ای خدا چقدر خوب میشد که یه کسی مثل پسر پادشاه به خواستگاری من میومد و منو از دست این زنبابای بدجنس نجات میداد خدایا اگه نظر من برآورده بشه حتما یه صرف کاچی میپزم دختر اونقدر راز و نیاز کرد تا به خابر روز بعد دختر مثل همیشه شطر رو برای چراب صحرا بود اتفاقا از غذا اون روز هم پسر پادشاه برای شکار به صحرا رفته بود دختر رو دید و یک دل و نست دل آشق دختر شد و به قصر که برگشت به پادشاه و ملکه گفت من امروز توی صحرا دختری رو دیدم که در حال کروندن شترش بود شما باید اون رو برای من خاستگاری کنید. یا اون یا هیچ کس دیگه. ملکه مادر از شنیدن این حرف پسرش جا خورد و گفت چی؟ دختری که شطور رو به چرا ورده بود؟ درست شنیدم؟ تو میخوایی اون هم سرت بشه؟ پسر گفت کاملا درسته. من فقط اونو رو میخوام. پادشاه هم با عصبانیت گفت اون دختر لیاقت همسری تو رو نداره پسرم دختری که شطر میچرونه در شعن ما نیست اما پسر گفت اون هرکی میخواد باشه من این دختر رو میخوام وگرنه تا آخر اوم ازدواج نمی کنم خلص اون قدر پسر روی خاصی خودش اصرار کرد تا بالاخره پادشاه و ملکه برخلاق میلشون راضی شدن به خواستگاری دختر مرد کاسب برن چند روز بعد هم جشن با شکوه عروسی پسر پادشاه و دختر مرد کاسب در کمال ناباوری پدر و زنپدرش شد روزها گذشت. مدتی بود که دختر توی قصر پسر پادشاه بود تا اینکه یه شب خواب دید که سه تا زن سیاپوش به اون گفتن: تو که به آرزود رسیدی، چرا کاچی رو درست نکردی ها؟ نمیخوای نظرت رو ادا کنی؟ دختر از خواب بیدار شد و دید که صبح شده. بلند شد و با خودش گفت: خدایا، منو ببخش. اونقدر سرم شروع بود که فراموش کردم نظرم رو ادا کنم من خیلی پیش از اینا میبایستی این کاچی رو میپختم امروز امروز دیگه اونو درست میکنم و نظرم رو ادا میکنم و بعد شروع کرد به درست کردن کاچی ملکه از راه رسید و دید که عروسش کمی آرد و شکر و روغن ریخته توی دیگ و رفت ته باغ ست سنگ آورد و گذاشت روی زمین و بعد دیگ رو روی اون قرار داد و زیرش آتیش روشن کرد ملکه از دیدن این ص خیلی عصبانی شد و یه راست رففت سراغ پسرش رو گفت بیاو ببین زن چهجوری داره؟ آبروی ما رو میبره بیا خودت ببین نگاه کن پسر با تعجب پرسید چی شده؟ اون چیکار کرده؟ ملکه جواب داد باید خودت بیای و از نزدیک ببینی تا باورت بشه اون اون اون، اصلا من از روز اول گفتم این دختر گدازاده به درد ما نمیخوره اون گدایی تو ذاتشه درستم نمیشه پسرم به سر با ناراحتی پرسید ما جان اون چیکار کرده ملکه گفت یه ذره آرد و روغن و شکر بردشته رفته ته باغ داره قضا میپزه مگه ما آشپزخونهٔ بزرگ و چندتا آشپز و نوکر و کلفت نداریم که اون خودش غذا درست میکنه ها اون میخواد آبروی ما رو ببره همین پسر با عصبانیت و ناراحتی رفت ته باغ و دید که بله حرف مادرش درسته به دختر گفت این چیه که میپزی؟ مگه تو آشپزی دختر جواب داد نه من چون مرادم رو گرفتم دارم این کاچی رو که ناس کرده بودم میپسام پسر پادشاه ناراحت شد و با پا زد زیر دیگ کاچی یه دفعه دیگ بلند شد روی هوا هر چی که توی اون بود برگشت ریخت روی زمین و پاچه‌ی شلوارش دختر از اینکه همسرش دیگه رو ریخته خیلی ناراحت شد ولی چیزی نمیتونست بگه با چشمای اشکبار به اتاقش رفت پسر پادشاه هم به سراغ پسران وزیر رفت تا با هم به شکار برن پسر پادشاه و پسران وزیر سوار بر اسب شدن و را افتادند رفتن, رفتن و رفتن و رفتن تا اینکه سر جالیزی رسیدند دوتا خروزه از صاحب جالیزها خریدن و گذاشتن توی خورجین اسب پسر پادشاه و براگشون ادامه دادند رفتن و رفتن تا اینکه باد و طوفان سختی در گره. پسر پادشاه پسران وزیر رو توی بیابون گم کرد و هرچه گشت نتونست اون رو پیدا کنه و بالاخره بعد از گشتن و سرگردانی های زیاد برگشت خسر. وزیر به محض دیدن پسر پادشاه سراغ پسرانش رو گرفت و گفته جناب شاهزاده پسران من کجا هستند چرا با شما بر نگشتن؟ پسر پادشاه جواب داد توی یه بیابون طوفان سختی شد وزیر و من اونا رو گم کردم در این موقع وزیر چشمش به پاچی شلوار پسر پادشاه افتاد که خونی به نظر می رسید و از خورجین اسبش هم خون در حال چکیدن بود وزیر آروم به طرف خورجین رفت و دید که دو سر پسراش توی خورجینه با وحشت فریاد کشید آه که بلایی سر پسرای من اومده شما اونا رو سر بریدین و شروع کرد به گریه و زاری کردن و بر سر و صورت خودش کوبیدن پسر پادشاه هر هرچقدر قسم و آیه خور که من اونا رو نکشتم و ما توی بیابون هم دیگر گم کردیم نه وزیر و نه هیچ کسی دیگه حرفش رو باور نکرد که نکرد وزیر بعد از دیدن سرهای پسرانش به پادشاه گفت گبله آلم اگه کسی دیگری رو بکشه شما دستور قتلش رو نمیدین؟ پادشاه که از دست پسرش خیلی خشکین بود جواب داد البته البته که دستور قتلش رو میدم. وزیر گفت گبله آلم برای اینکه که عدالت همیشه در مملکت شما برقرار باشه و بی خود کسی کسی دیگه ای رو نکشه باید دستور بدید، پسرتون رو بکشن. آیا این کارو می کنی؟ پادشاه که خشکین بود جواب داد، بله، بله، باید عدالت بش بله. و بعد دستور داد تا پسرش رو به سزای اعمالش برسونه. پسر با خودش فکر کرد، من که میتونم به وزیر رو نکشتم. اونا توی طوفان گم شدن. ممکنه خودشون راه رو پیدا کنن و برگردن. بنابراین گفت، من حرفی ندارم که منو بکشید ولی فقط چهل روز به من مقدت بدین تا پسرای وزیر رو پیدا کنم. پادشاه با اصبانیت فریاد زد، احمق نباش وقتی دو سر بریده اون دو جوان توی خورجین توه میخوای چی را پیدا کنی ها ولی پسر باز هم قسم خورد که اون پسرای وزیر رو نکشته و اونا رو توی طوفان گم کرده و اونقدر روی این حرفش اصرار و پافشاری کرد تا بالاخره پادشاه و وزیر قبول کردند که چهل روز به اون مهلت بدن ولی سرهای پسران وزیر رو بنبان مترک نگه داشتن و پسر رو هم به زندان انداختن تا چهل روز اونجا بمونه روزها به تندی گذشت و روز سی و نهم بود که پسر پادشاه توی زندان نشسته بود اون روز رو که دیگه کاچی زنش رو واشگون کرد بیاد آورد با خودش گفت هره از اون روز که زدم و کاچی زنم رو ریختم نمیدونم چرا برای من گرفتاری و ناراحتی بیشون باید دنبال زنم بفرستم اون حتما چیزی میدونی که من نمیدونم و بعد درخواست کرد که زنش رو به نزدش بیرن. چند دقیقه بعد زن پسر پادشاه به زندان اومد اون از اینکه همسرش رو توی این وضعیت میدید خیلی ناراحت بود و اشک میریخت پسر پادشاه گفت الان وقتی گریه اوزاری نیست تو اون روز گفتی که مشکل من حل شده و مرادم رو گرفتم که دارم این رو میپسم اون چی بود که میپختی زن با گریه جواب داد کاچی کاچی بود پسر گفت برو و برای رای من اون کاچی رو بپس شاید من از اتهام و از این زندان نجات پیدا کنم زن گفت من فردا صبح اون رو میپسم پسر گفت نه نه نه الان بپس من فردا گردنم زده میشه. زن گفت، این وقت شب که نمیشه. پسر گفت، فردا هیچ فایده ای نداره. همین الان این کاچی رو بپس. زن قبول کرد و رفت ته باغ اجاق رو درست کرد. دیگر رو روی اون گذاشت. شروع کرد به پختن کاچی. هنوز دید جوش نیومده بود که سرکرده پسرهای وزیر پیدا شد. زن با خوشحالی همه را از پیدا شدن پسرهای وزیر با خبر کرد. وزیر با خوشحالی و ناباوری خودش رو به پسراش رسوند و پرسید. شما این که روز کجا بودین؟ اون سرها متعلق به شما نبود؟ من خودم اونا رو توی خرجین شاهزاده دیدم. پسرهای وزیر با تعجب پرسیدن. کدوم سرا؟ ما از چیزی خبر نداریم. ما توی بیابون اسیر طوفان شدیم، سرگردانی های زیادی کشیدیم. وزیر رفت سراغ خورجین و دید که به جایی سرها دوتا خربوزه توی اونه. خوب که جستجو جو کردن، دیدن که روی شلوار پسر پادشاه هم کاچی ریخته شده بود، نه خون. بنابراین، پسر پادشاه از زندان آزاد شد و سالهای سال، در کنار پدر و مادر و همسرش زندگی کرد و از اون به بعد هر وقت مشکلی داشتن برای حل اون نیت می و کاچی می پخدن. افسانی ایرانی مشکل‌گشا رو براتون نقل کردم برگرفته از کتاب قصه‌های عامیانه مردم ایران به گردآوری و تحقیق منوچهر سلیمی این افسانه رو خانم شیرین صادقی هشتاد ساله از نیشابور روایت کردند همینطور که زندگی گذشتگان برای ما افسانه، زندگی کنونی ما هم به طور حتم روزی برای آیندگان افسانه خواهد بود پس تلاش کنیم زندگی ما بگونی باشه که برای آیندگان افسانی زیبا و ماندگار، بیادگار یادگار هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده زینت سالپور ویراستار بهار گیویان اجرام مهران دوستی صدابردار محفام پرتو تیگه کننده زهرا عبدالله زاده بیخیال پدر